زمین را از آسمان نسار است و آسمان را از زمین قبار کل اینا این یترش شهو بمافی کرت خوی من آمد ناسزاوار تو خوی نیک خیش از دست مگزا